خدمت خانم ها اوو پیداست اوو پیداست از اوو اوو تو بیماری دل علت آشق ز علت ها زداست عشق استرلاب اثرار خداست آشقی جرزین سر سرو گردون سر است عاقبت آش... ما را بدون سر بر است هر چه بگویم را شرح و بیان سون به شکوایم خجل باشم از آن چه تفسیر زبان روشنگر است اشک بی زبان روشن است چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به اشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش تو خر در جل به خوفت شرح عشق و عاشقی هم اشک گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب جد دلیلت باید از وی رو متا از وی سایه نشانی میدهد از وی سایر نشانی میدهد، شمس هردم نور جانی میدهد سایه خواب رو را همچون سمر شمس چون براید شمس انشد گل دمر خود قریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی امس نیست شمس در خارج اجرچه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد شمس جان کو خارج آمد از اسیر نبدش در ذهن و در خارج نظیر در تصور ذات او را گنز کو تا در در تصور مثل او خب ما جلسه گذشته خروجی چهارون را در داستان زرجر و پادشاه خوندیم چه درباره ادب بود و یت چه قصسی از داستان هم چه ولی میآید اون طبیب روحانی میآید بر سر بیمار و میخواد ماهینهش بکنه سابقه مرضش را و اینکه علایم و نشانیهاش چیه تب میکنه لرز میکنه نمیتونه خواب بکنه استراب داره این علایم و نشانیهای های مرض را زودا میشه خب ما معمولاً یه مقداری پر جشتیم از مسائلی که در نشست قبلی صحبت شده مرور میچردیم تشرار میچردیم چی یادمون باشه ولی فرش نمیخواهم که در این جلسه خیلی لزومی داشته باشه که برگردیم به اون حرف های ثابت بنافاصله مولانا بعد از اون اندچ مقداری که برجشته به قصه دواره خروجی باز میکنه و این خروجی خروجی پنجمه و اون خروجی مربوط به عشق این خروجی خیلی مهمه برای اینکه اولا راجع به چه چرتا پای مستمی مربوط به دوم اینکه این عشق این بهانه است برای یاد شمس تبریزی و این قصه زرجه که اون چنیز و مداوای اون طبیب روحانی این گفتیم چه در خود اول قصه هم گفته در حقیقت نقد حال ماس آن قصه خود مولاناست با شمس تبریزی بنابراین خیلی مهمه و خیلی هم با حال از باحالترین و بلندترین دکته های مصنوی عاشقی پیدات از زاره ی دلگفت آمد این طبیب معاینه کرد این چنیز را و دید رنز و چشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت چون سلطان این را آورده بر سر بیمار، ولی با خود سلطان نگوفت چه قراره، فهمید قضی از چه قراره ولی افشا نچند، بهش رنجش از صفرا و از صدا نبود، یعنی بیماری های جسمی فیزیکی نبود بوگ هر هیزان پدید آید زی دود، ما قدیم چه هیزون مصرف می کردیم برای جمع کردن خونه ها در فصل زمستان خوب روشن بود وقتی بیت می سوزه وقتی زردالو میسوزه، وقتی درخت بادام میسوزه، اینا بو میده، ده بوهای مختلف میده. و معلومه از دودش، از بوی دودش معلومه چه هیجونش چی بوده اینا یا بید بوده یا فرق جردو بوده فرق, فرق میکنه، بوی دودش فرق میکنه دید از زاریش که زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است ما در فارسی واجه هایی داریم که از معنا خالی شده در طی استعمالات گرون و اثار هر پیشتر رفتیم این معناش خالی کرده معناش رو. الان ما اون کلمات را به کار میبریم ولی درست به اون معناش توجه نمیکنیم. یعنی ببین چه دودی بجم این بس بس چه سوده شده ساییده شده ساییده شده سابیده شده و نمیگیره اون چلمه معنا را نمیگیره استفاده افاده نمی کنه به شما بعضی از کلمات هست چه ما نیمه شده کاملا خالی نشده ولی اون فرس قدیمی و اون زور قدیمی رو نداره از جمله اینها زاری ببینید مرحوم فروزانفر در شرحش از احیالوم غزالی نقل کرده که غزالی زاری را اونجا معنی کرده میجه زار یدلو فی الاجمعیتی علال مشرف علال میجه در فارسی زار وقتی میگویند چیارو مشرفه بر مرج شده یعنی همه امیدش رو دست داده یعنی اون خط آخر اون آخر آخر دجه. اینو میگن زار ما الان زار میجیم زاری میجیم ولی اون فرسه اون قدرت و قوت معنی قدیمی رو الان نداره در میان ما دید از زاریش که زار دلست تن خوش است و او گرفتار دل است عاشقی پیداست از زاری دل باز کلمه زاریه نیست بیماری چه بیماری دل علت عاشق علت ها جداست علت یعنی مرز بیماری بیماری عاشق جداست از هر بیماری دیگر جای دیگر گفته ملت عاشق ملت ها درست اون یه بحث دیگری است. اینجا علت عاشق عشق هم بیماری است ولی این بیماری جداست از بیماری های دیگر اشک استرلاب اصرار خداست با استرلاب منجم چشم میکنه چه کدام ستاره در کدام برج حرشت های ستاره ها رو رست میکنه می، می فهمه الان از چه گراره این استرلاب دست منجم نیست این استرلاب دست مردان خداست چه اصرار خدا را از استرلاب عشق چشم می کنند آشقی زن سر و جرزن سرست میگه جه اگر این یعنی دنیایه اگر ماده اگر فیزیکی اگر عشق فیزیکی و اگر عشق معنوی عشق روحانی اون سر اون سری با این سری اون سری در اصطلاح مولانا معمولا یعنی اون عالم ورای حس وقتی با اونجا به آخرت که در لسان قرآنی بهش میگن آخرت دیگه این سری دنیا به معنی نزدیکیه دنیا از دانهه دیگه اون چه به ما نزدیشتره اینو میگوییم دنیا این زندگی نزدیشتری که هر روز باش ما چلنجار میدیم و دست به جریبان هستیم اینو میگیم دنیا یعنی نزدیشتر این زندگی چه نزدیشتره به ما میگوییم دنیا اون زندگی چه آخرت اون سری، اون سره اون میشهیم آخرت یعنی اون چ بعد از این جنتی آخرت هی. اون سری آاش اگر اشک اشک معنوی یا اشک مادی میجه چه اواقبت ما رو به اون اشک معنوی رهبری مید به اون اشک اون سری چرا ا که این سری همیشه اقیم سطرونه زودگذر همیشه آدم رو نو میکنه همیشه آدم رو معلوم میکنه سیر میکنه اون عشق اون سریشه هرچه چه, هر چه جلوتر بری بیشتر تشنه تر و عاشق تر میشی عشقی جز سر و جرزنسر سر است اوجبت ما رو بدان سر رهبر است ابراهیم اول به ستارگان گفت چه ربی بعد ستاره تو روچرد فلا معافلت گفت ما خدایی که یه دقیقه هست دقیقه نیست این به نمیخوره و خب صرف نظر شد بعد وقتی فلا ما را، را وقتی ماه را دید بازغم ماه آده شب بالا آمده با شکوه ضرال خودش گفت هزار ربی ولی وقتی ما هم غروب کرد ما هم به تاریچی رفت گفت اینم به درد نمیخوره اینم چه باباز نشد اینم چه رفتنی بود. بعد آفتاب در آمد و آفتاب گفت که این خوبه عینا همینطور وقتی دید چه آفتابم رفت، گفت چه پس این به این چیزهای محسوس نمیشه دل بس هیچ کدام از اینها مشوق واقعی نمیتونه باشه مشوق واقعی چه همیشه با من باشه اون غیر از اینهاست هرچه گویم عشق را این یک مقدمه است مولانا میگه به عشق هرچه گویم عشق را شرح و بیان تون به اشکایم خجل باشم از آن گر تفسیر زبان روشنگر است اصلا زبان برای تفسیر برای روشنگری دیگه تفسیر زبان قبول دارم روشنگر است اما اشک بی زبان روشنتراست است چرا؟ بعد روشن خواهد شد بعد خواهد گفت خواهد گفت رو همین معنی این بیت را خودش خواهد گفت در این صحبت هاش. چون گلم اندر نوشتن میشکافت چون به اشک آمد یک چیز به اسلام شاعرانه است قدیم قلم را به گلم نهی بود می مینوشتن بعد گلم را میشکافتن برای اینکه بهتر به اینچه همیشه شکاف می زدن، درست؟ می چون گلم اندر نوشتن می شتافت چون به قلم بر برخود شکافت این ایهام داره، همون شکاف فیزیکی فیزیسی را میجه و اون شکافی چه ترجمه است اون شکافی چه تعبیری است از عضو و ناتوانی گلم چه دیگه جلو بره نمی‌تونه ادای وظیفه بکنه عقل در شرحش چو خر در جل بخفت در شرح عشق عقل در شرح عشق چو خر در جل بخفت خب وقتی خر در وحل می‌گویند خر وقتی قدیم آخر این تیاره باونم دارم این چیزهای وسایل حبل و لقل امروزی چه نبود خره را بار می‌چردند، مالتیزاره را امتره رو کاله‌ها رو با خر می‌آوردند خرم وقتی همینجور وقتی بارانی میشه ماشین شما، اوتومبیلیش را می‌لغزه باید خیلی با دکت را برید معمولاً هم تصادفات زیاده خب خرم همینطور وقتی باران بود، بارانی بود زمین جد شد خره خوش می‌لغزید دیگه و او زیر بار هم هست اون بدوقتی از اونجا مسئل شده چه خر در لحل خب خر اگر زیر بار نبود می‌شد به آسانی بلنده شد خره زیر باره چه جوری باید بلند شد کار خیلی مشکله هم برای خره هم برای صاحب خر چه چه کار رو کنه حالا عقل در شرحش سخر در جل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد گفتن شرح اون بیت را بعدا خواهد گفت مولونا اینا شرح اون بیته آفتاب آمد دلیل آفتاب ما یه دلیل داره یه مدلول داریم همیشه دلیل ما را رهبری میکنه به مدلول اینجا می که ما برای آفتاب چه مدلوله دلیل دیگری تو خود آفتاب نداریم آفتاب آمد دلیل آفتاب دلیلت باید از وی رو مطاب چرا؟ از وی ارسای نشانی میدهد دهد ساید نشان آفتابه اگر ما میبینیم سایه افتاده میدونیم که آفتابی هست و این درخت سایهش افتاده روی این آبدان این روی حوض فردو ترمایی روی سطح پس سایه نشان این هست چه آفتاب هست از وی ار سایه نشانی میدهد شم سردم نور زانی میدهد خود آفتاب رو روشن میکنه و میبینی اون نشانه افتاب رو میده اینجا خدا افتابه خدا آفتاب بهتر میتونه خودش رو معرفی بکنه سایه خوابارت تو رو همچون ثمر ثمر چه شبانه است چه در سایه گفته میشه ببین ثمر میگن ثمر از سمر اصلا برآمدن آمدن ماه را می گوید سامر و, و, و سمر قصه هایی را که در شب در تاریخی شب در زیر نور ماه در ماه تا هایی که میگفتند قدیم قدیم نوری نبود چه شب مثل روز روشن بشه یا گاهی من ببینم روشن تر از روز میشه چون گاهی روزهای ما تاریخ تر از شب وقتی دیگه همه جا برگ همه جا مثل چه روشن تر از روز میشه قدیم اینجوری نبود قدیم مطالعه چتاب هم میرفتن زیر ماهتاب زیر نوره ما در اونجا چتاب میخوندند یه شم تراوی یه تراغ بود مثلا دوروبر خودشون را برای اینکه روشم بکنه قدیم در شب مینشستند برای اینکه شب را به سر بیارند قصه میگفتند و قصه های شبانه مقدمی بود برای خواب خوب گسه دیجه رخوط میاره همزور طرف را از حواس پریشانه او را زم میکنه به یک چیز متمارسیز میکنه در خود قصه. وقتی تمرکز پیدا کرد حواس در گسه یه باشه اون حالت تقدیر پیدا میشه و می خواه به دیگه برای بچه مادرها استفاده می از این گسه گویی دیگه با گسه بچه را همزور لالایی خوابش میده میگه سایه خواب آرد تو را همچون سمر چون برای شمس این شکل اون دیگه ماه از بی میده با اون برای خواب نیست این برای در آفتاب برای بیداریه اون برای خواب نیست برای خوابه و خواب میاره ولی آفتاب چه بر آفتاب برای زندگی و سرزندگی و حرکت و نشاطه. خود غریبی حالا مولانا صحبت شمس چه چرده یاد شمس تبریز میفته ناچار خود غریبی در جهان چون شمس نیست ببین این دیگه برجست از شمس آسمان چهارم رفت به شمس تبریزی خود غریبی در ذهان چون شمس نیست شمس جان باقی چشمس نیست شمسی که شمس با مداد طلوع میکنه شامگاه غروب میکنه شمس ظاهر این شمس جان باقی شامگاه نداره ما عبده برشته از چه دیمچه اون که میجه پیش خدا نه بامداد هست نه شامگاه ما برای خدا نه سباه و نه مسا وجود نداره اون شمس باگی نه بامداد داره و نه شامگاه داره شمس در خارج اگر چه هست فرد شمس در خارج یعنی این شمس عالم خارج واقع این آقایان فوقه های ما برای این در اصول بحث عالم واقع خارج همیشه عالم خارج واقع می جن. یعنی عالم خارج یعنی اون که در در نیست. در مقابل عالم ذهنی ما عالم خارج داریم و عالم واقع یعنی اون که در ذهن هست واقعیت نداره. وجود ذهنی داره ولی اون واقعه یعنی میشه لمس شد میشه حس شرد میشه دست و روش حد دکت در میشه معلوم کرد بنابراین شمس در خارج اجرد چه هست فرد یه دونه ما یه دونه خورشید بیشتر نداریم یه خورشید اجرد چه فرده تنهاست یه چی بیشتر نیست ولی میتوان هم مثل او تصویر کرد، لا اگر در ذهن شما میتونید مثل او را تصویر بکنید او در خارج یه چی بیشتر نیست ولی نظیرش را شما در ذهنتون میتونید تصور بکنید یه آفتابی در ذهن خودتون تصور بکنید اما شمس زان اون شمس باوی ها شمس زان شمس دان باقی که امسلیست اون شمس دان اون شمس معنوی اون شمس تبریزی شمس دان که خارج آمد از اسیر اسیر اون چیزی که محیطیست چه آلم محسوس رو احاطه جرده این افلاچ رو احاطه جرده اسیر در اصطلاح نجوم سابب و اون اسیر معمولا در فارسی وقتی میجیم اسیر یا اسیری من, من آسمان، اون آسمان بالاتر، اون جهان بالاتره شمسه، جان کو خارج آمد از اسیر از آسمان ها هم بیرونه چون آفتاب محسوس میگویند در آسمان دیگه این چمس جان از آسمان ها هم بیرونه نبودش در ذهن و در خارج نظیر در خارج چه نداره چون از عالم خارج نیست حتی در ذهن هم شما نمیتونی نظیرش را بیافرینی چرا؟ برای این اگر چیزی را شما در ذهن می آفرینی، چیزیشی در خارج دیدی نظیرش رو در ذهن برای خودت می آفرینی. تا چیزی وجود خارجی نداشته باشه وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه وجودهای ذهنی شما برداشتی است کپی است و یا تمیجان اسامبلاژ تمیجان از تلفیق است از اون در عالم خارج دیدید اون در ذهن شما میتونی تصور بکنی چیزی که در خارج دیدی اون را میتونی نظیرش را در ذهن خودت بیاپرینی چیزی را که در خارج وجود نداره شما چطور میتونی تصور بکنی؟ تصور چیزی که در خارج وجود نداره ممکن نیست همسه جان کو خارج آمد از اسیر نودش در ذهن و در خارج نزیر نوجود ذهنی داره نوجود خارجی داره در تصور ذات او را گنج بند کو گندی کو،, کو شما ببینید این کارگاه واجه مولانا گند کو گنزیدن و گنزایی و گنزایش جلمه گنز میزیده در تصور ذات او را گنز کو میشه او در تصور چجوری میگنزد این تصور چجور گنزایی ذات او را داره در تصور ذات او را گنز کو گنز در تصور کو چه بتواند؟ ذات او را راه بدهد در تصور ذات او را گنج کو تا در در تصور مثل او اول ذات او را باید تصور بکنیم تا مثل او را بدونیم تصور بکنیم چون حدیث روی شمس دین رسید شمس چارم آسمان سرد در چشید واجب آید سنچ آمد نام او شر شدن رمزی از این آم او این نفس جان دامنم برتافته است بوی پیراهان یوسف یافته است چه از برای حق صحبت سالها بازگوحالی از اون خوشحالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده سد سندان شود لا تچلفنی فعنی فیلفنا چل تفهامی فلا احس سنا کل شیء گاله و غیر المفیق این تچلف او تسلف لا یلیق من چه گویم یک رجم حشیار نیست شرح اون یاری که او را یار نیست شرح این هدران و این خون دجر این زمان بگذار تا وقت دجر گاله ات امنی فا این او و تجل فلوقتو سيف و قاتع و صوفي الوقت باشد ای رفیق نیست هر گفتن شرط طریق تو مجر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه فیض نیستی گفتمش پوشیده خوش در سر یار خب تو در ضمن حکایت گوش دار خوشترون باشد چه سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بازگو دفع مده ای بلفزول پرده بردار و برهنه گو چه من می نخستم با سنم بی پی با پیره گفته مر اوریان شود او در ایان گفته مر اوریان شود او در ایان نه تومانی نه کنارت نه میان آرزو میخواه یک اندازه خواه بر نتابد کوه را یک برج کاه آفتابی که از بین عالم فروخت اند چی جر پیش آید جمله سوخت فتنه و آشوب و خوندگی مازور بیش از این از شمس تبریجی مگول ببینید مولانا در غذالیات همینجور چپ و راست از شمس تبریزی گفته در مصنوی مصنوی مال دوران سکون مولاناست ما مثنوی دفتر دوم مصنوی 1662 شروع شده دفتر اول ما درست نمیدونیم چی شروع شده ولی فرض بکنیم که مثلا 656، 655، 56 شروع شده باشه شمس تبریزی در 642 آمده در گونیه در 645 رفته و سربنید شده از 645 تا 642، 17 سال فاصله است ما در دیوان در غزلیات مولانا چپ و راست میبینیم یاد شمس تبریجه در مصنوی فقط در دفتر اول و دوم است اسم شمس تبریض در میان میاد در دفاطر دیگر همونه چه گفت چه در ضمن حکایت گشدار بهتران باشد خوشتران باشه از سر دلبران گفته آیت در حدیث دیگران اسم نمیاره در دفاتر سه و چهار و پنز و شش اسمی از شمس نمیبینیم ولی در دفتر اول و دفتر دوم مثل همون غزلیات اسم شمس نمیاره میاد دفتر اول در اینجاست دفتر دوم اونم در اوایل دفتر دومه یعنی در فش میکنم هزار هزار و خورده ای در اونجاست اسم شمس میاد اونجا چه میگوید قوت میگه گوت اصلی بشر نور خداست گوت حیوانی مرو را ناسزاست لیچ از علت در این افتاد دل چه خورد او روز و شب زن آب و جل روی زرد و پای سست و دل سبچ کو غذای وسما ذاتالهبچ بر امید از ده روز خدوج جردن خود کرده انداز غم تو چو دوچ چون نمی اینجا چه منم چند در این از آفتاب روشنم مشرق خورشید برز گیرگون آفتاب ماز مشرق ها برون مشرق او نسبت ذرات او نه برآمد نه برون شد ذات او ما چه واپس مانده ذرات ویم در عالم آفتاب بیفید باد گرد شمس می جردم عجب همز فره شمس باشد این سبب چد هزاران بار ببریدم امید از چی از شمس این شما باور کنید تو مرا باور مکن چه از آفتاب صبر دارم من و یا ماهیز آب ما ز عشق شمس دین بینا خونیم و نما اون کور را بیمار کنی. این در دفتر دومه چه بعد اگر عمری باقی بود و فرصتی می افتوبه اومد دلیل افتاب جد دلیلت باید از وی میگه در دفتر سوم پیش خورشیدی که بس روشن است در حقیقت هر دلیلی رهزن است آخه گفت که اون در مقالات شمس هست اون یارو در منبر میگه که من به دلایل خیلی منطقی من وجود خدا را اثبات کردم شمس در مدلس بوده گفت چه من دیدم ملائک فرشتگان نازل شدند و همهشون اظهار خوشوقتی می‌کردند چه چه خوب شد این حضرت خدای ما را ثابت کرد و جنده ما شدن شده بودید. <تصفيق> ابله خدا خودت رو ثابت کن خدا ثابته خدا رو ثابت کردن نمیخواد خدا رو ثابت کردن یعنی چه دستیار رو میگیری میبری زیر آفتاب از چسی راجع به آفتاب از شما دلیل میخواد دلیل آوردن برای وجود خدا گذیه رو پیچیده تر میکنه و تر میشه دارو اگر کسی در باره آفتاب شرک داره و دلیل میخواد از شما آفتاب هست یا نه دستشا میبید میگیری وری زیر آفتاب دلیل نمیخواد پیش خرشیدی که او بس روشن است در حقیقت هر دلیلی رهزن است آفتابی در سخن آمد که خیز آفتاب آمده داره فریاد میکنه کند داد می آفتابی در سخن آمد چه خیز چه بر آمد روز بر جه چم ستیز آفتابی طلوع چد با طلوع خودش مثل چه فراخان میده، فریاد میکنه. کند شما چه بلند شد روزه درست تو کوی آفتاب و کوکو کو <تصفيق> یادت کور از حق دیده خواهم آفتاب مدت روزی روزه تو نش خوا دلید چ برای اون چیزی که خدا را باور داره خدا را اون دوری باور داره خدا را حس میکنه همونطوری که آدمی که زیر آفتاب بره آفتاب آفتا حس میکنه خدا را با دلیل و برهان نمیشه ثابت کرد نمیشه با دلیل و برهان به خدا راه یافت خدا را باید دید و مسئله دید در مولانا برش خواهیم کرد انشان پیش میاد خواهید دید که مسئله دید برای مولانا چه اهمیت داره؟ این غیر از اینه که از راه برهان و دلیل چیزی ثابت بشه شانس در خارج اجر چه هست فرد یعنی یگانه است. می توان هم مثل او تصویر چرد ببین سایه خواب آردت رو همچون سمر چون برای شمس این شکل کمر در اینجا یه ایهامی هست ببین این شکل کمر، این شکاگ گمر موجزه برای به پیغمبر نسبت می دهند. و هم از علایم قیامتی وقت اقتربت ساعت و شکل گمر و یرو آیتن یعرضو و یقولو مستمر قیامت شد اقتربت ساعت و شکل گمر و ما از هم شکافت حس از هم شکافتن ما علامت برخواستن قیامت روز رسخیج اکتربت ساعت و این شکل کمر خوب وقتی میجه سایه خاور تو را همچون سمر چون برویت شمس وقتی آفتاب برآمد این شکل کمه دو معنی میده یه چیزی که با آمدن آفتاب ماه غروب میکنه ماه دیگه دو دوره تمام میشه ماه را خودشو میشه شو میره دوو اشاره میکنه به اونچه در اونجا گفته چه قیامت قائم میشه و هم به معجزهی چه نسبت میده هم به پیغمبر چه معجزه برای اثبات نبوت ازیه که این نبوت این, این راستگوست این مدعی وحی راستگوست راست میگوید که وحی براش راضر میشه معجزه برای اثبات راستگوی پیغمبر ازیه برحال این سنت شعری ایهام در اینجا خیلی من دیگه زیاد به این چیزهای لفظی نمیپردازم، ولی شما خودتون چون حدیث روی شمس و شمس تارم آسمان سرد در چشید یعنی از خدالت رفت و پنهان شد شمس چارم آسمان سرد در چشید تو یعنی این که وقتی وقت این درویشا می نشینند از گسا می بافن برای پیرهای خودشون پیر گفت چه یارو رفته بود اون رف آسمان تو دید خورشید نیست دید اونجا تاریشه و خورشید نیست و خورشید چی شده پس کجاست گفت خورشید رفته به زیارت شمس تبریزی <تص> من ها که به افلاچ هست <تصفيق> خب یه اقراق, اقراق شاعرانه رو آوردن دیگه <تصفيق> بله چون حدیث روی شمس و دنرسید شمس سارم آسمان سر در چشید یا رفت قائم شد رفت نقفی شد یا به گول افلاچی رفت به زیارت شمس نبودون زاد و باید چونچ آمد نام او شرح رمزی شرح شرپن رمزی از این او رمز رمزی چیز پوشیده از رمز مرموزه شرح رمز شرپن یعنی یه مقداری از اون رمز را باز کردن افشاد کردن روشن کردن شر کردن رمزی از انعام بود انعام نعمت دادن از چلمه نعمته دیگه برخوردار کردن ای جدایان خرابات خدا یار شماست چش انعام مدارید ز انآمی تند از یه مش انام می چندمال حافظه از یهش انعام با انام داره بازی میکنه بازی لظشه ازیهش اییوان چشم انعام ندارید چشم انعام ندارید زن می تند ای به می تونله به هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل آمیت از اون گذل بلند حافظه واضب آیمد واضب آیمد چون چه آمد نام او شر کردن رمزی از این آم او این نفس جان دا منم برتافت است بوی پیراهان یوسف یافته است گفتن جان مراد برای اینچه اینجا ما داریم میبینیم چه یه گفتگوی داره سر میزیره بین دو نفر مولانا با یکی دیگر چه او اون یکی دیگر اصرار میکنه چه راجع به شمس بیا صحبت ها بکن و این مولاناش سر باز می‌زنه میگه چه صحبت او موضوعم نمیتونم دربارهش حرف بزنم و او توندی میکنه نگاهی و حتی میگه این پلفزول حرف حرفت بزنم بیا بگو مطلبشو رو. شایدان که این چه این, این جان گفته منظور از جان همون حسام الدین ارمویه. چرا چه در دیباطه دفتر اول ورانا گفته در حق حسام دین گفته و مکان روح فی جسدی میچه مسامدی به منظری جان منه و مکان روح فی جسدی بنابراین انجام چه میجه این نفس جان دامنم برتافته است من هیچ دلیلی برای این تشلف نمیبینم من فکر میکنم این یک حدیث نفسی این یک بحثی در گرفته بینه مولانای مولانا مولانا من من مولانا اون چه این من من هم منچر می شود مرا اون من من مولانا اون جان خود جان عاشق مولانا جان عاشق مولانا است که یقی مولانا را گرفتم که چه بی به شامس حرف بزند این نفس جان لازم نیست بجیم ما سامدین بوده یا چطی دیگری بوده خود خودش اون درون اندرون مولانا دامنم برتافت هست دامن برتافتن باز اینجا از این شارهین من خیلی نمی پردازم به این شارهین گاهی نظرهای طرفه دارند. یه چی بیجه برتافته است یعنی بیقرار شده و به التماس داشته داشت است جان به التماس افتاده است یعنی روح و جانم جسم و تنم را بیقرار شده است یه چی دیجه دامنم را برتافته است یعنی دامنم به کنار زده است و دارد بیرون میآید از زیر دامنم هم چون گاهی شمس مولانا گفته چه در زیر دامن من ای تو چه شعر می این شعر را از زیر دامن من این حرف در نتیجه عدم آشنایی با زبان مولانا زبان مولانا زبان شمسی ما دامن را دامن در دست گرفتن دامن در تافتن را در مقالات شمس دارید در یک لحظه به دو دست دامن او را در تافت او دامن میچشید که مرا بگذار اون چشید که در بیابان اون که آمده این را داده و اون شیطان بوده این خلاص اون بحثی که در مقالات شمس هست نیجه در یک لحظه به دو دست دامن او را در تافت یعنی محکم گرفت دامنش را و او دامن می کشی که مرا را بگذار خب معلومه دامنش رو گرفته ببینم دامنش رو می چشو چه آبیلم کن بنابراین این نفس جان دامنم بر تافت است جان دامن مولونا را جرفته یعنی جخش را جرفته، جریبانش را بوی یوسف یافته است بوی پیراهان یوسف به دماغش خورده به مشام جانش رسیده، حالا خود یوسف را میخواد میخواد بیشتر را به یوسف حرف بزنه بیشتر راجع به شمس حرف بزنه از برای حق صحبت سالها می به خاطر سالها صحبتی حالا صحبتی چه من با تو داشتم یا صحبتی چه تو با شمس داشتی خب اون چیزی که گفته چه جان مراد حسام اینجا بر به حسام الدین برای به حق سالها صحبتی که با تو داشتم یعنی سامدیم با مولانا داشتیم ولی در اون تعبیری که ما پسند این میشه چه از برای حق صحبت این سالها صحبتی که با شمس داشتی حق این صحبت را به بیار و یک مقدار بگو راجب این به اون آدم چه برای حق صحبت سالها بازگو یعنی چه برای حق سالها صحبت ببین نهر چلام به هم گرده ها اینجا از گواعد دستوری خارج میشه از برای حق سالها صحبتی چه با او داشتی بازگو حالی از اون خوشحالها از اون از اون روزهای خوشی که با شانس داشتی یه تچه یه حکایاتی به ما بگو تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد شود این گشایشی چه حاصل میشه با یاد این مردان خدا مولانا جواب میده جواب عربی میده چه بلچه طرف این امونزومی خدا سلام داشته باشید. من داشتیم در تبریز میگفت فارسی میگم تا خود ریگانم بفهمه حالا مولانا اینجا عربی میگه که عرب بفهمه گفت لا تا مولانا جواب میده لا چال لف نی فینی فلفنا شل من زورم من در بمباس نیاز اینجا ان فشار نیار بر من لا تشلفنی فانی فل فنا من در عالم فنا هستم وقتی من در شع شم... یاد می کنم با خودم نیستم لا تشلفی فانی فل فنا کلت افهامی کل خلل به معنی خستگی فهم من دیگه خسته شده سرسوده شده چلا تفهامی فهم مند یاران نداره ناتوان شده فلا احسی سنا این را از اون حدیثی منسوب به پیغمبر اکرم چه پیغمبر میگو لا احسی من نمیتونم تو را بشمارم و تو خودت باید سناگوی خودت باشی چما انتا چما از نیت علیش همین که حرف مولانا گفت آفتاب باید آفتاب رو روشنجر آفتاب آفتابه چل تفهامی فلا چی سلام من عاجزم از برشماردنه کلشه این گالهو غیر المفیق هر چه آدم مست بگه غیر المفیق مفیق مفیق یعنی آدمیش بیداره غیر المفیق یعنی آدمیش بیدار نیست مست هر چه بگوید هر چه بگوید آن را چه هشیار نیست آدمی که در ناهوشیاری در بیهوشی در مدهوشی در مستی حرف میزند، هر چه به او این تچلف او تسلف لایلی اگر چه زور بزند تکلف تکلف زور زدنه دیجه. از کلفت کلفت به معنی رنج زحمت تکلف خود رو به زحمت انداختن نجید آقا بین ما چه تکلف نیست؟ چرا تکلف میکنی؟ یعنی چرا زور میزنی بابا؟ ما رفیقیم خیلی خوب اومدم بخونی تو تکلف لازم نیست؟ یعنی خودت رو به آباتش نزن؟ خب این تکلف اگر هر چه زور بزند، او تسلف، تسلف هم مثل تکلفه، مرد صوفی، سنهایی میگوید مرد صوفی تکلفی نبود خود تصوف تسلفی نبود مرد صوفی اهل تکلف نیست و صوفی جری هم با با تسلف تسلف چیه؟ تسلف لاف زدنه رجل متسلف یعنی آدم لافزن اصلا صوفی جری میگه با لافزدن با لافزنی آشنایی نداره صوفی کجا لافزنی کجا بنابراین میگه کلشه این گاله و اون آدم مدهوش اون آدم آدمی که بهوش نیست هر چه بگوید اگرم خودش را خیلی به تچلف بیاندازد یا حتی بخواهد لاف بزند یعنی خیلی دیگه اغراکوی بکند لایالیک به درد نمیخوده لایالیک یعنی لایق نخواهد شد چیز درخوری نمیتونه تحویل بده خودش رو هر چه به آب و آتش بزنه چیزی در خوری ازش برد نخواهد آمد من چگویم گویم یک رجم نیست همون چی میجه غیر المفیگا یک رجم نیست شده اون یاری چورا او را یار نیست این مده فوق فوقلادی است که از شمس میکنه همونطور در غزلیاتش است شرح اون یاری چورا یارنی شرح این هدران این خون دجر این زمان ببذار تا وقت دجر مولانا التباس میکنه که فراموش بکنه این بحث را ولی ولی اون جان اون دستبردار نیست اون من باطمی مولونا گالت امنی گا اینجوری نمیشه فعی نید من گشنمه چیزی بده این که همزور سپوت میکنی نمیشه گالت امنی ما گشنمونه یه چیزی به ما بده گالت امنی فعی نید جای او وقت از جل بشتاب فلوکتو سیفون گات او وقت شمشیر برنده ایسی یعنی داره روزگار میذاره فردا میفتی میمیری و چتی نیست از شمس که چیزی بگوید و یادگار بگذارد چی بود، چه آتشی بود آمد چه آتشی بود آمد، آتشی بود دیگه ای آتش افتاده در بیشه اندیشه ها ای رستخیز ناجهان ای مولانا اینجوری خطاب میکنه ای رستخیز ناجهان ای آتش افتاده اندر بیشه اندیشه ها اصلا ببینید هیچ چیزی نظیرش رو در هیچ جا ندارید که این شمس در وارش آتشی که در بیشه اندیشه ها در بیشه افکار و اندیشه ها افتادید سوزندی همه رو صوفی بنال وقت باشه، میگه وقت رضایه نکن، وقت دست نده، صوفی بنال وقت باشد ای رفیق نیست، فردا گفتن از شرط طریق، این با تصوف ناسازگار اینچه این, این میگه، باز باشه، باشه بعدن، باشه بعدن، باشه بعدن نداریم ما باز مولانا میده، اها میگه تو مجرد خود مرد صوفی نیستی، تو چه صوفی هستی؟ هست را از نسیه خیزت نیستی این کسابه می می چه میبینید چه مینویسند چه نسیه داده شود حتی به جناب حالی نسیه یعنی رفتی شد <coughs> نسیه یعنی میشه آو اینگرد مالا حواله و نسیه نسیه ندهی نسیه نمیشه کار را تمام بکن بگو گفتمش باز مولانا استادهی میکنه گفتمش پوشیده خوش در سر یار خود تو در زمن حکایت گوش دار خوشتران باشد چه سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران باز طرف دست بر نمیداره گفت مکشوف و برهنه بی غلول بازگو دفع مده ای بلفزور مکشوف و برهنه یعنی اوریان و او نمیخوام این قدر استعاره به بدی و این گدر توشش شعر رو این حرف ها حرف بجنی حرفته بزن مکشوف و برهنه بی غلول غلول ببینید غلول اولانا میگه اون نصیحت در لغت زد غلول اولانا میگه در لغت نصیحت ضد غلول است پس غلولم ضد نصیحت نصیحت چیه خیرخواهی غلول از سروا کردن غلول غل و غشت معلوم معمولا ما میجیم آگل فلانی آدم بیگل و چیه؟ نمیخواد کلا بذاره غلول غلول به معنی خیانت به معنی بداندیشیست در مقابل نصیحت چه خیراندیشیست میخواد طرف کلا بذاره میخواد طرف در بره از زیر باره تعهدی که داره اینم میگه غلول خب. گفت مکشوف و برهنه بیغلول بازگو دفع مده دفع دادن باز از اون <تصفح> تعبیرات مولانا دفع دادن یعنی از سروا نکن مرا ما الان میگیم از سروان قرده بردارو برهنه گو که من می نخست بم با, سنم با پیره هم اصلا برهنه برهنه میخوام. من نمیخوام هیچ هایلی باشه اریان به من بگو بگو مصرفت رو گفته من اریان شود او در ایان ما معمولاً می‌گهیم ایان در لواهت خیلی بخوایی، بسوات بخواید بدی باید ایان تلفظ بکنی خیلی از ما می‌گهیم خیال در لواهت هست خیال ما، مهم نیش، هر طوری شما راحت ترید تلفز بکنید، بس شنید گفته، اوریان شود، او در ایان نه نه چنه نمیان آرزو میخواه، لیکن دازه خواه بعد نه تابد کوه را یک برج کاه شما یک برجکاه را میخواهی که این برجکاه یک کوهی را بر تحمل بکند یک برجکاه تحمل یک کوه را نداره افتابی که از وی این عالم فروخت فروخت یعنی افروخت مولانا گاهی حرفی بر چلمی می افضاید گاهی حرفی از چلمی چم می کند برش مهم نیست اون سه مهمه که مطلبش ادا بشه مولانا تسلط داره بر زبان زبان مسلط بر مولانا نیست یه چیزی نقل میکنند از مرحوم فروزآنفر که گفته که میگویم مولانا در بند وزن و قافیه نیست و من میگویم چه وزن و گافیه در بند مولانهاست آفتابی که از وین آلم فروخت اندکی گر پیش آید جمله سوخت نمیشه خیلی چیزها هست چه این را بدون حایل بدون فاصلگیری ازش نمیشه باش چنار آمد آفتاب خیلی نزدیک بشه تو رو میسوزانه بنابراین این شمس اون شمسی. چه بدون فاز بدون حایل بدون این چه در لباس دیگران در لباس قصه من با تو حرف بزنم از نمی نمیتونم حرف بزنم فتنه و آشوب و خونریزی نزور بیش از این از تبریزی مگو یه چیزی هست در مقالات میگه چه من اگر باطنم اگر ظاهرم همونطوری که باطنم هست جلوه بکنه میگه این عالم نمیمونه این عالم تبدیل میشه به یه عالم دیگری این تا این عالمی هست من همین همینجور در پرده هستم این ندارد آخر از آغاز گوی رو تمام این حکایت باز گوی این قصه شمس تمام نمیشه تو این قصه شازاده و حکایت او رو بگو من فیش میکنم چه داریم نزدیش میشیم به وقتمون این چند رو بخونیم ناگذی رو جلسه رو خاتمم بدیم برمی جرده مولانا اینجا به یعنی اون خروجی پنجم که برای عشق بود اون خروجی پنجم مال عشق بود اینو تمام کردیم بعد می برمیگرده به خود گسه متن گسه خلوت تلویدن اون ولی از پادشاه زهد دریافتن رنج چنیزش گفت ای شه خلوتی کن خانه را اون ادبی گفت اینجز آدابه ها و اینچه همه چیز راهی رویشی ادبی داره گفت ای شهر خلوتی کن خانه را دور کن هم خیش و هم بیگانه را چس ندارد گوش در دهلیز ها هیچ در صدد استراگ سم نباشه گوش بپرسم بپرسمده این چنیزش چیزها خانه خالی ماند یش دیار نه جز طبیع بود جز همون بیمار نه نر نرمش گفت شما میبینید بولانا را پرس پرسان یادتی تی نر نرمش گفت نردنرمش گفت شهری تو کداست. چه الاده این الاد هم از هاست ما الاد میگیم ولی خوب لغت الاده این قدبای خیلی عدیب منش ایراد میگیرن اگر علاج بخوانید ولی خوب ما الاد میگیم لا الاده خیلی هر نرمش کو شهر تو کجاست چه علاج اهل هر شهری جداست این بهانه میاره که تو شهر من شهرو میفورسی برید چه جای خوب ما برای هر شهری داروی خاصی ما داریم و درون شهر از کروبت چیستت یاوسوس خوب کوخیشات چه چی, چی رو داری همه خالی مثلا دایی پدری بود خیشی و پیوستجی با چیست دست بر نبزش نهاد و یچ به یچ بعد میپرسید از دور فلچ خب چه بر سرت آمده یاد تو چنیزه اینا به عنوان برده از یه ولایتی اینا جرفتن، آوردن، فروختن و این میخواد که مثل روانکاوها از اول خب مال کجا بودی؟ مثل من چطور بود؟ چی داشتی؟ دری مادری، بدری خوهری بعد همینجور، بعد همینجور میخواد چه انشالله اجرزنده بودیم و مفیق راشتیم پفته آینده دنبال می کنیم خیلی خیلی خیلی خیلی <Wolverine> <possibly>